راه رسیدن به این قله اینی نیست که شما جلوب چشمت بشاهده میکنی که حالا اینجا قله است اینم دامنه است بگیرو برو بالا اگر چنان شما بی احتیاطی کردید همینی که جلوب چشم شماست دامنه رو گرفتید رفتید بالا قطعا به نقاطی خواهید رسید که نراه پیشرفتن دارید نراه عقب آمده آرمانگرایی بدون ملاحظه واقعیت ها به خیال پردازی و توخم خواهد انجامید بدون دیدن واقعیت های جامعه تصور آرمان ها هم خیلی تصور درست و صحیح نقاهد بود چه برسه به دستیابی به آرمان ها درسی که انقلاب داد و امام بزرگوار، باقی گذاشت این است که در این حرکت سی ساله آرمان ها آرزوهای عظیمی که اسلام اونها رو به ما القاه می کند و تعلیم می دهد از نظر دور در این حال واقعیت های موجود جامعه و جهان هم مورد توجه قرار گرفت یعنی ترکیب آرمانخواهی، خواهی آرمان با واقع بینی ترکیب وانمود میکنن که آرمانگرائی با واقعبینی نمیسازه بسیاری از آرمانه های جامعه ما مطالبه اونها جزب واقعیت های جامعه است مردم مایلند که عزت ملی داشته باشند. مردم مایلند که زندگی ایمانمدار و دیمدار داشته باشن مردم مایلند که در امور اداره کشور و مدیریت کشور سحیم باشند پیشرفت داشته باشند استقلال سیاسی و اقتصادی داشته باشند این خواسته ها واقعیت های جامعه است گرایی رو با واقع بینی و واقع گرایی همراه کنیم این ترجمه عملیاتیش می شود این که ما تدبیر را با مجاهدت ترکیب کنیم